الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لاسی ما وقیت الله فی الارزین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 السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي الاسكري السلام على الحجت ابن الحسن الغائم قال الحسين عليه السلام صبرا بن الكرام فما الموت الاغن تره تعبر بكم عن البؤس الزرّا إلى الجنان الواسعه والنعيم الدائمه الدائمة، فإياكم يكره أن ينتقل من سجن الى قصر، وما هو بدأ أداءكم إلا كمن ينتقل من غسر إلى سجن وأذى. إن أبي حدثني أن رسول الله إن الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر، والموت جسرها هؤلاء إلى جنانهم. و جسرها اولائه الا جهیمه ما کذبت و ولا کذبت انایت دارید که در طی این چند شب با توجه به این فرموده عبی عبدالله علیه السلام که در صبح روز آشورا اصحاب خاص خود را جدا کردن در جمع و حلقه یاران حقیقی خود این عبارت رو بیان فرمودم یک سوالی دیشب دستم رسید امیدوارم سوال کننده تشفت داشته باشند دو نکته در رابطه با رائعز بنده روشون پرسیدن که از این دقت متشکرم و اصلا در ادامه بحثم شاید لازم هم بود که به این نکته توجه کنیم ولی این سوال باعث شد که من همین اول این قسمت رو جلو بندازم و این رو نتیجه گیری کنیم پیش بریم فرمودن اینکه که عبدالله فرمودن بن الکرام ای فرزندان افراد کریم و با مکرمت خود اینها رو که به عنوان افراد دارای مکرمت ظاهرا خطاب نکردند. دوم اینکه بنده از آیات استفاده کردم در اثر صبر رحمت نازل می شود و اون رحمت باعث نجات همه انبیا می شود رحمت نکره بود ولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت این رحمت که در اینجا گفته شده من با چه شواهدی از آیات استفاده کردم و نجینا نوح و لوت و صالح و غیره و و من معهو به رحمت مننا که این رحمت همون رحمت است یا نه خب از دقیقتون متشکرم ولی الان براتون نشون میدم بله هم اینو دقت بفرمایید حالا شاهد براتون از حدیث و آیه میارم یک عبا عبدالله علیه السلام غیر از اینکه که شهدای کربلا و این اصحاب خاصه خاص را با عنوان افراد کرام میشناسد میخواهد بیان کند شما رگ و ریشه و اصالت نژادی و پاکی و طهارت نطفه ای هم دارید که توانستید به این مقام برسید نه تنها خودتون کرامید بل الکرام هم هستید حالا توضیح سه نکته داریم سه مطلب داریم سه بار اون مقداری که بنده پیدا کردم سه بار در روز آشورا امام حسین علیه السلام و اصحابشون فرمودن ای کرام به خودش و بعد در این عبارت بن الکرام کرام فرمودن حالا من نمونه هاشو عرض می کنم یک در مقتل خارزمی این از منابع اهل سنت جلد دو صفحه نم در لحوف که از کتب مقاتل بسیار قابل توجه است صفحه هشتاد و وقتی جنگ داشت آغاز می یعنی از طرف سپاه دشمن تیرها به طرف یاران عبی عبدالله سرازیر شد حضرت فرمودن قوم و ایها الى الموت برخیزید ای افراد عظیم دارای کرامت به سوی مرگ الی لابد منه که چاره ای نداریم و باید مرگ را بپذیریم فئن هاذه السهام رسل القوم الیکم این تیرایی که داره میاد به طرف ما از طرف اینها رسولان اون مردم است به سوی ما یعنی با تیر دارند به ما اعلام میکنند اما شاهدی که بنده دارم قومو و ایهل کرام برخیزید آماده بشید حرکت کنید ای کرام پس اینجا حضرت در این عبارت به خود این اصحابشون فرمودند کرام بعد از اینکه نماز ظهر رو حضرت خوندن باز در همین منابع. بعد از اون که نماز ظهر را حضرت خوندند با همون کیفیتی که می جلوش ایستادند و تیر آمد و غیره یه تعداد شهید شدند یه تعداد باقی حضرت خطاب به اون تعدادی که باقی بودن فرمودن یا کرامو ها زهل قد فتحت عوابها ای افراد با مکرمت ای کرامان این درای بهشته که داره به سوی شما باز میشه خودتونو آماده آمادهی ورود کنید این نکته دوم در روز آشورا پس یک صبح آشورا اول جنگ تیرها که می آمد حضرت فرمودن یا کرام قومو نماز زر رو که خوندن بعد از اون ای که هنوز باقی موندن باز فرمودن یا کرام ها زهل جنه قد فتحت ابوابها ای بزرگواران ای کریمان این بابهای بهشت است که به سوی شما باز شده است این را هم حضرت اشاره فرمودند و همچنین در مقتل حسین ابی مقنب صفحه 133 داره وقتی که همه یاران ابی عبدالله شهید شدند نوبت به خود حضرت رسید این اون آخرین لحظات وقتی اومدن میدان نگاهی به چپ نگاهی به راست انداختن فرمودن یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن اروه و یا حبیب ابن مظاهر مظاهر چند نفر رو اسم بردن تالا من بقیه اسمار دیگه لازم نیست منظورم ایناست فقومو من نومتکم الکرام حضرت همه اونها نه اینایی که الان تو کربلا شهید شدن حضرت مسلم جناب هانی اونا را هم خطاب کردند و اسم بردن قوم من نومتکم از این خواب آرامی که رفته اید برخیزید ای ال کرام ای افراد با مکرمت و فاو ان حرم الرسول اطفال عام از حرم رسول از آل رسول این طاقیان پستها را درانید و دور کنید خب اینجا توجه دارید حضرت نمیخواد به اونهایی که شهید شده بفرماد پاشید کنایهی از این بحث مکرمت اینها کریم بودن اینها بزرگی و عظمت اینها در حدی است که الان در عالم روحی که اونها قرار دارن نگران عوی عبدالله هستند. حضرت هم با روح اونها داره ارتباط برقرار میکنه اون بحث خاص خودشه اما در رابطه با سوالی که کردی دقت بفرمایید پس یک در این که خود اینها کرامن که بحثی نیست طبق این شواهدیم هم که گفته شده میخواد بگه بن کرامم هستید حتی ارزش این چنانی هم دارید مادرانتونم ارزش داشتند، پدراتونم ارزش داشتن شاید کسانی در مربیان شما هم بودن که در این کیفیت برابردن شما تأثیر داشتن. این یک نکته. نکته دومی که مورد نظر بود در سؤال زمینی به این مطلب هم باید اشاره کنیم، بنده استدلال کردن دلالت حدیث رو توجه داشته باشید، از خودش در میاد. وقتی کرام بنل کرام صبرن براشون مطرح میشه یعنی چی یعنی شمایی که انقدر بزرگید حالا توی ای قرار گرفته اید که برای بزرگتر شدن برای بالاتر رفتن نیاز به صبر دارید همونطوری که ایمان مقوله به تشکیک است درجات مختلفی داره یا ایها الذین آمنو منو خب پیغمبر اسلام مؤمنند انشاءالله بنده و شما هم مؤمنیم ولی ایمان من شما و ایمان پیغمبر کجا ستوه فرق میکنه همچنین صبر یک صبر در مراحل ابتدایی اولیه است که دیشب نسبتا مبسوط بحث کردم یک صبر در مسائل حساس حاد امتحانهای ضایی است که باز نمونه هایشو امشب انشاءالله عرض خواهم کرد اون صبری که برای کرام و بنل کرام چه صبریه؟ این نشون میده حالا که میخوای به درجه بالاتر شما برسید صبر در این مرحله را هم باید شما قبول کنید و پذیرا باشید خب من برای باز روشنتر شدن مطلب اجازه بدید خود این کرام را و کرم و کریم را که از لغات قرآنی و حدیثی و تو فرهنگ معارف دینی ماست یه مختصر توضیح ارز بکنم کرم کریم کرامت هم از اسماع پروردگاره یا کریم هم کرامت از ویژگی و صفات ارزنده است که یک بشر میتونه پیدا کنه به لغت مراجعه کنید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 همانا ما کررم نابنی آدم کرامت دادیم به نسل آدم و این آدمی زاد رو بزرگوار و کریم داشتیم یعنی چی؟ یعنی خیلی موجود فضیلت داره میتونه با اون عرض گونه که و تبارک الله احسن الخالقین مطرح میشود؟ یعنی ارزش‌های وجودی که این انسان میتونه داشته باشه در یک سطح سیار است. لذا اینو به عنوان یک ارزش برای انسان مطرح میکنه کرمنا بنی آدم ما کرامت دادیم خدا داره به عنوان عظمت انسان اینو مطرح میکنه دو نکته اجازه بدید درس کنم با یه حدیث در زیلش از قرآن که برای بنده خیلی جالب بود متشکرم این سوال منو وادار کرد که به این طرفم یه کمی کشیده بشم که ارز کنم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 یعنی می‌خواهد رب اکرم بنده ای را که کرامت توانشو بش داده در فعلیت بکشونه به مقام کرامت اجازه بدیدی توضیح ارضه کنم مربی غیر از مربیانی مثل خود خدا و ائمه اطهار علیهم السلام که ایجاد استعداد میکنن نه اینا رو منها کنید فعلا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 راجع به شما هم گفته و لقد کررم نابنی آدم یعنی استعدادی که در آدم هست استعداد به مرحله کرامت رسیدنه و خدا می خواهد شما را به گونه ای تربیت کند به این مقام کرامت برسید امام حسین روز آشورا میفرماید فرماید سبرند و نلکرام اینا رو بگذاری کنارم حالا از آیه دیگه باز استفاده کنم سوره الرحمن آیه 27 و 28 بقا وجه و ربک زل جلال و الکرام تبارک اسم و ربک زل جلال و الکرام در اونجا کلومن من ها فان و یبغا وجه و ربک زل جلال و الکرام تبارک اسم و ربک همه فانی هم اونی که ربی که زل جلال و اکرام است باقیه اینجا زل جلال و اکرام رو به کار برد در آیه 28 تبارک هست مربکه مبارک است پربرکت است اسم پروردگار تو زل جلال و اکرام که دارای جلال و اکرامه خب تفسیر علی بن ابراهیم قمی از امام باغر علیه السلام و سلام تفسیر امام رو بگم بعد به اندوزی فام خودمونی مختصری توصیه بدیم. تفسیر علی ابراهیم قومی، امام باغر عليه السلام در زیل این آیات شریفه، تبارک اسم رب بکذل جلال و اکرام، نحن جلال الله و کرامت او، الّتي الله تبارك و تعالى على به بتوعتنا و محبتنا یعنی چی؟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 که کرم نابنی آدم مطرح کرده میگه این استعداد تو داری که اگر در راه تکاملش قرار گرفتی بشی یک انسان با کرامت انسان با کرامت یعنی موجود ارزنده لذا عبی عبدالله وقتی میخواد اصحابش رو به عنوان شخصیتهای برجسته عالم معرفی کنه بن کرام، ایو الكرام که مطرح میشه میشه مقام اینها حالا صابرند صبر کنید استقامت داشته باشید. اینجا سوال کردن از کجا اون در آیه شریفه بقره براتون خوندم ولی نبلاون نکنم من الخوف والجو و من آل امبال و آل انفس و آل سمرات و بشر صابرین اللذین اجازه اصابت هم مصیبه قال و اینا لیللا و اینا علیه راجیون اولادی که علیهم و رحمه این رحمتی که اون همه آثار رو داشت از بنده سوال شده از کجا و نجینا فلان و فلان و فلان که همه انبیا بود و من معهو به من مننا رحمتی است که در اثر صبر یک بحث عام داریم یک بحث خاص بحث عام رحمت در اینجا عام میانه نه رحمت الهی رحمت الهی گسترده است بله خود پیغمبر رحمت خدا هست یا نه؟ رحمتون للعالمی. و و و اما طبق خود این آیه شریفه در اثر صبر ارزشی که برای انسان به وجود نیاد قرآن رو رحمت نامیده یا نه؟ پس در اینکه که نجیناه و به رحمت مننا در اونجا که مشخص نکرده این رحمت علی فلام داشته باشه بگیم رحمت معینه‌ای است قطعاً از باب اون بحث کلی که این رحمت عام است و قسمتی از این رحمت رحمت در اثر صبره شاملش میشه این یک دوم آیاتی که دیشب خوندم و امشب یه شاهد قرآنی قوی‌تر هم در این زمینه براتون میخونم مگر دیشب صریح نگفتیم خداوند راجب جناب خیر و وجدا عبدنا من عبادنا آتيناه رحما مننا این رحمتی را که به او داده مگه آیه بعد نگفت در اثر خبره ولن تستطیع معیه صبر اون درجاتی که به او داده رحمت گفته به جهت صبری که داره و به حضرت موسی علیه السلام میگه لن تستطیع معیه صبر همون آیات اگر شما ادامه بدید در سوره کف در ادامش باز این مطلب روشن میشه که همش بحث بحث صبره من حالش فریدت میشم فوجدا دا من عبادنا آتیناه و من عندنا و علمناه و من لدننا علما قال له موسا هل اتبعو که أن انتو من ما علم ترشتا غال انکه لن تستطیعه معيه صبر را و کیف تصبره الا ما لم تهد بهی خوب بازم بحث صبره وقتی وقت حضرت موسی قال ستجدني ان شاء الله صابرا امیدوارم بتونم این مقدار صبر رو پیدا کنم ان الله که منم این درجه صبر رو مییابم که چی اگر اون مقام را خدا به جناب خضر داده است رحمتا همه آیات میگه راجبه چیه؟ راجبه صبره این صبر متعام پله عالی صبر حالا اجازه بدید شاهد دیگری که یک مقدار به نظر بنده روشن مسئله رو داره بیان میکنه جناب ایوب علیه السلام دیشب گفتم وقتی که مزرعش آتش گرفت بیس هزار تو تراز سائقه زد یه جا از بین رفت سیل آمد همه گوسفنداش رو دفعه برد ریخ دریا همه با هم دوازده به سرش یک جا آوار ریخت رفتن زیر آوار خودشم مریض شد از شهرم بیرونش شردن همسرشم هم می رفت خونه ها کار میکرد براش غذا می آورد اونم راه ندادن به اون عذیتی که ابلیس کرده بود شیطان تا مجبور شد ولو دختر یوسف پیغمبر همسر ایوب برای گدایی کنه، قضا تهیه کنه، همش حضرت ایوب میگفت الهی لک الحمد، هر چی تو بخوای تسلیمم. میخواد خدا نشون بده در عالم وجود بندگان برجسته من در مقام صبر چگونن، یک جا دلش به درد آمد. آخ از این دلی که به حق به درد بیاد دلی که تو پرانتز بگم خدای مام حسینو قرار داده. ما رابطه قلبی با امام حسین برقرار کنیم دل ما حسینی بشه دل حسینی وقتی حسین داره برای مشکلات مادی گریه نمی کنه. برای ارزش های عالم بالا گریه میکنه. و لذا دردمندی درد حسابی میشه تا دل مرد خدا نامد به درد این جردی که در دل مرد خدا اونم کجا بود صحبت اساس همسرش؟ رفت. مدتی حضرت ایوب غذای گرم مثلا نخورده فقیر در اوج مشکلات اومد دید مجلس عروسیه غذای گرم پختن همسر ایوب پیغمبر اومد به صاحبان عروسی گفت یه مختصر از این غذای گرم میدید برای ایوب ببرم اینی که سالها سفر حالا 18 تا 20 سال طول کشیده این مشکلات اینکه این همه سفره پهن میکرد برای شما غذا فراهم میکرد شیطان اومد وسوسه کرد صاحب خانه رو مادر عروس رو دید که همسر حضرت ایوب موهاش خیلی پرپشت و جالبه گو اگه قسمتی از این موها رو بده به من برای تزیین دخترم که عروسه به کار ببرم بهتره گفت یه مقدار از این موها رو ببر به من بده من غذا گرم بهت بدم به خاطر نبی خدا که این همه مشکل تحمل کرده قسمتی از موهاش رو برید داد به او غذای گرم و تعیی آورد این غضیه که به عضرت ای ایوب رسید دلش به درد آمد شکایت نکرد فقط این عبارت رو با خدا گفت آیه یشداد و سی سوره ی انبیاء حالا دقت کنید و ایوبه ازنادا ربه انی مستنی از ذرو و انتر هم الراحمین شکایت نکرد ببینید ایوب ندا به تفاصیل نگاه کنید هم از روایی و غیر روایی در زیل این آیه مشترکن این بحث را مطرح میکنن که ایوب ندا در داد ای خدا به من رنج رنجها میرسد ولی تو هر همون مینی چرا رنج میرسد نمیگه؟ تو پرانتزی عبارت بگم یکی دیگه از سؤالات که دیشب به دستم رسید بنده گفتم جزا و فضه عجر و پایین میاره اون مقامی که در اثر صبر بناس خدا به انسان بده با جزع و فضع از بمیره سوال کردن پس چرا پیغمبر وقتی پسرش از دنیا رفت جزع و کرد نعوض به الله جزع و فضع تا گریه کردن این دو تاست جزع شکایت جزع بیتابی نسبت به اون توعم با, با اعتراضه جزان جزع نپذیرفتنه وگرنه پیغمبر وقتی اشک میریزد میگه از عاطفی پدرم دلم برای بچه میسوزه دارم اشک میریزم اما یک کلمه خدایا چرا پسرم رو بردی؟ خدایا ای پسرم میبایست بمونه؟ اینامت مطرح نیست حضرت ایوب نمیگه چرا من به این گرفتاری و بلاها افتادم میگه خدایا بلا و رنج داره به من میرسه ولی تو رو دارم که ارحم الراحمینی اینجا پروردگار عالم دیگه امتحان ایوب تموم شد جواب داد آیه 84 فاستجبنا لَهُ و مَا ما بهی من وَآتَيْنَاهُ و وَمِثْلَهُمْ احله و مثلهم معهم رحمة من عندنا از ان روشنتر قرآن بگه برادر در قرآآن بخونی آیاتو نگاه کنی روال آیاتو توجه کنی دقت بفرمایید وقتی ایوب پیغمبر همه این مراحل و تحمل تحمل تحمل با اون زُر عزمای دل مرد خدا به درد رسیده پس تجب او ما اجابت کردیم و کشفنا ما بهیمن زُر اون زری که برایش بود اون رنجی که برایش بود کشفنا کنار زدیم و آتینا و اهل او و مثلهم ما اهلش رو و اونایی که مثل او بودند در این رابطه بچ معهم و چی دادیم؟ رحمتا من اندنا از طرف ما رحمت براش اومد یعنی بعد از بیشال تحمل عیوب در برابر تمام امتحانات اونچنانی پروردگار خدا میگه چی دادم؟ رحمتا و رحمتا من اندنا حالا این رحمت ببرید اونجا رحمتیش که رنجینا اینجا ف تجربنا لع و کشفنا و نجینا صالحان و من رحمت این رحمت عظیم پروردگار حالا دقت کنید اینجا نکتهی دیگه قرآنی بگم خیلی مهمه لزام امام حسین مذهر عنایت پروردگار به صورت تام در این عالم میشه تبرگ این آیات توجه کنید چی عرض میکنم؟ یک خداوندی که اسم ذاتش الله جای خودش محفوظ بیش از هزار اسم صفت داره که به کار برده شده صد و چارده بار در بسم الله رحمان الرحیم رو مطرح کرده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله رحمان الرحیم صد و سیزده بار اول صد و سیزده سوره سوره براعت و توبه که بسم الله نداره سوره نمل و اضافه میشه همون بار میشه. همه مفسرین و روایات هم این رو مطرح میکنن چرا خدایی که بسم الله الرحمن الرحیم می بسم الله الكریم الغفار بسم الله الرحیم الجبار و و و همه اینا شد گفته بشه همش بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان, الرحیم رحمان الرحیم امیر المؤمنین در دعای کمیل رحمت کلتی رسعت کلشه اللهم انی از الو که ب رسعت کل شیء این رحمتی که تو همه جا را گرفته رحمانیتش و رحیمیتش رحمت خاصه رحمت عامه خدایی که این همه صفت داره که این صفاتش رو خالقیت اسم صفتشه عنایتش آفرینش ما رزاقیت اسم صفته عنایتش روزی دادن به ما محیبودن بودن اسم صفته این تجلیش حیات بخشیدن به ما ولی اون انایت پروردگار که خیلی به کشیده رحمتش هست و این رحمت از سطوح پایین میاد میاد میاد بالا بالاترین درجه رحمتی که پروردگار عالم به بندگانش میدهد کاشانیان که در ابتلا ابصوران و امام حسین علیه السلام و یاران امام حسین که به مقام مکرمت رسیدن اونچنان صبوران که عالیترین ترین عنایت پروردگار که رحمت خاصه پروردگار است شامل حال اینها شده لذا اینها به این مقام رسیدن که با این رحمت هر چیزی رو بخوان در عالم انجام بدن به اذن الله توانند. نه خدا ابو عبدالله رو کشنش اجل شهدای کربلا میتونم طبق آیات وقتی ایوب پیغمبر به مقام صبر میرسد و بر اثر صبر رحمت بهش می رسد که بعد از رحمت چی شد جوان شد بیماریش از بین رفت همه اونایی که از بین رفته بود دوباره بر برگشت مگر اینا نیست در اثر چی شد؟ در اثر رحمت. رحمتی که بعدت از صبر میرسد. وقت این رحمت برای کسانی که به مقام مکرمت انسانی میرسند، امام حسین میگه صبرن، صبرن، صبرن. پس ارزش صبر مشخص میشه که چیه. حالا پس این تکمیل بحثم به اندازه ای که سوال ایجاب میکرد حالا نتیجهگیری باز بکنم بحث هنوز خیلی کار داره باید ادامه بدیم در این زمینه ان شاءالله شب‌های بعد حالا دقت بفرمایید خب پس باید صبر کرد صبر از کجا شروع کرد این صبر فقط مال اصحاب ابی عبدالله تو کربلا بود همه ما در هر سطحی که هستیم دقت بفرمایید ایام عبدالله است. موضوعی را که اعلام کردیم میخوایم بحث کنیم چه درس از کربلا میاموزیم ما نمیخوایم فقط بیایم اینجا بگیم جان پدات بشم دوست دارم دل ما سوخت که شما رو مظلوم شهید کردن ما سیاه پوشیدیم تو سرمون میزنیم این یه مرحله است ای برای شروعه این در واقع در زدن در خانه امام حسینه ولی باعد وارد خانه بشیم وارد خانه امام حسین بشیم میخایم چکار کنیم حسین جان شما دارید به اون برجستگان که بن کرامن و کرامن میفرمایید صبرن، سبرن مسئله صبر مطرحه؟ خب پس من اگر شیعه ابی عبدالله هستم صبر برای من مطرح هست یا نه؟ هیچ که داره بگه نه؟ در هر مرحله از مراحل زندگی که قرار گرفته ای چقدر قدرت صبر داری؟ به همون اندازه ارزش داری اگه میخوای ارزشت بالاتر بره آقا ماده است من میخواهم در حد راه نمایی و ترسیل بشم سوالات امتحانیش در حد راه نمایی ماده کنکور دانشگاه بدم سوالاتی رو که باید جواب بده از او امتحان میگیرن در حد سوالات ورود به مرحله دانشگاه ماده دانشجوی دکترام امتحان جامعه دانشجویان دوره دکترا اونچرا که در رشتهش از لیسانس تا آخرین واحد دکترا که پاس کرده همه رو یک جاش امتحان میگیرن میبینن چیکار کرده شام مرده علاج تازه اگه تو این امتحان قبول شد میگن حالا بیا تاج بنویس ادعا چیست و لقد کرمنا بنی آدم بنی آدم رو خدا به قدر استعداد مکرمت انسانی داده این استعداد بخواد بروس پیدا کنه هی باید تو امتحانات قرار بگیره بیاد بالاتر از پله پایین تر یه مثال یه شب زدم بعد نیست دوباره استفاده کنم به شکل دیگری ده میلیون تومن پول مخواید بدید به آغازاداتو نگاه میکنین ظرفیت نداره این پول دادی منعرف شده نمیدید در یه شرایتی یه وقت میگید هیچ وقت صلاحیت یه همچو پول به دستش اومدن نداره پس هیچ وقت نمیدم یه وقت میگید توی آزمایشیاتی قرار بدم یه کمی پخته بشه سردگرم روزگار بچشه بعد ده رو بدم اما یه وقت میگه میخواد به ظرفیتی برسه میلیاردها تومان پول در اختیارش باشه به نفع مردم در جامعه کار کنه فعالیت کنه اینو چیکارش باید بکنن که پول هی تمرین، هی تجربه، هی ممارست، هی تو امتحانات بالا پایین رفتن تا اون چیزی که بناس به او بدن، برادر رو خواهد دقت کنید. امیر المؤمنین خلق تم، خلقتم، للبغا، لا للفنا، ولکن، مندارن، الادارن، تمتقلون شما برای بغا خلق شدید، شما برای فنا آفریده شدید لاکن از سرایی به سرایی دیگه منتقل میشید شما دارید تو این دنیا به شکلی امتحان میدید که با صبری که میکنی اون درجه ورودی عالم آلم تون رو از اینجا مشخص کنید با این دیگ داره نگاه میکنه لذا بعدش ابی عبدالله بلا فاصله بعد از سبرن بن الكرام کلمه موت مطرح میکنه فمل موت و الاغنتره ای پله میخوای از این پل رد شی چه کار داری میکنی که اونور پل رفتی کجا بری تو کدوم جمع بشنی با کدوم مردم میخوای هم نشین بشی اون عالی ترین درجه ای که در عالم معنا که باید در اون که عالم حیات واقعی شماست سطح حرکت زن... به صلاح کمالیتون در اونجا معلوم بشه از میزان صبرتون در اینجا معلوم میشه و وقت این صبر رو از پله کوچولو شروع میکنن اهلش هستی میبرنه تو پله بالاتر اینجا خوب دقت کنید مثلا یک در واجبات میگه چشم من نسبت به واجبات صبر دارم نمازم ترک نمیشه میشم. روزم از بین نمیره میشم. مستطیع شدم میرم حجم و میرم ای رو دارم میگه خواب یه پله اومدی قرب واجبات رو پیدا کردی فرائض رو قرب نوافل هم میتونی پیدا کنی یا نه توی یه امتحان بالاتر میندازن نسبت به مستحبات چکار کنی اونم داره قرب فراعضم نه اهل نماز شبی صبر میخواد دیگه نماز شبم میشم میخونم دراحت قرآنم در طول سال انشالله ترک نمیشه بعضی از این مستحبات و مغییدم کم کم انجام میدم پس یه پله اومدی بالاتر تو ابتلاعات زندگی قرارت میدن ابتلاعات هم دو شکله گاهی چیزایی بد میدن چه کار میکنی؟ موجود مقدسه حضرت زینب کبراد سلام الله علیها وقتی یزید رو مخاطب قرار داد اول فرمودن یزید تو ارزش این که من با تو صحبت کنم نداری ولی به جهت تکلیفی که دارم دارم با تو حرف میزنم این آیه شریف بر تو خطبه حضرت زینب در مجلس یزید حضرت خوندن همه میدونن سوره مبارکه آل امران آیه 178 به آیه دقت کنید ولا یحسبن الذین کفروا ان نملی نملي لهم خیر لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما لهم عذاب مهین این از وصف زینب یزید میگه ولا يحسبن الذين كفروا اونایی که کفر زیدن بدی میکنن آدمای زشتیان حساب نکنن گمان نکنن ما به اینا مهلت دادیم. امکانات زندگیم میدیم تنشون هم سالم نگه هم می داریم مثل ایوب پیغمبر که هیچ یه ده هزارم ایوبم مبتلاشون نمیکنیم خیر لنفسهم این براشون خیر خدا دوستشون داره تو این ناز و نعمت و آسایش و آرامش قرارشون داده ان لهم لیزادو اینو در اصطلاح چی میگن استدراج شنیدی که قرآن هم میکنه نه ای اونقدر بدی کرده میگه دیگه حالا مثال میزنم مثال من بارها عرز کردم به خودم بچگان از چاره ندارم با مثال روشنش میکنم دقت بفرمایید شاگرد اومده تو کلاس برای چی اومده خود عالم بشه رشد کنه جلو بره دو شکل مطرح یک در درسر می میخونه تلاش میکنه گای میفته گایی برمیخیزه افتان و خیزان معلم میبینه نه ا هلش هست به جایی برسه اینو نباید ولش کرد یه روز جریمهش میکنه یه روز نوازدش میکنه یه روز تو مدرسه نگه همی داره کار اضافه تر بهش میده یه روز از باب تشویق میگه امشب تکلیف بد نمیدم زودتر بری بخوابی هی در این نشیب و فراز زندگی میخواد بیاره بالا بعد میبینه به جایی رسیده شرایط علمیت سطح بسیار بالای ارزنده براش هست میتونه به این درجات نائل بشه میگه حالا وقتش عزیزم تو به جایی رسیدی باید از نظر تحقیقی بدرخشی تو شبی پنج ساعت بیشتر نمیتونی بخوابی. از امشب معمول میذارم تو رو از خواب بیدار کنه تو بای... سختی بله باید اینا تحمل چون میتونی اما یه وقت این شاگرد به درد کلاسه نمیخوره این اهل علم و اینا نیست میگه آقا جون برو تو خیابون هر چی دلت میخواد قدم بزن برای اینکه تو تو این کلاس کسی خودت که چیزی نمیگیری هیچی نمیداری چاس دیگر چیزی بگیرن تو برو تو خیابونا قدم بزن این آرامش از نظر ظاهری راحتی تو کلاس نبودن گوش ندادن تکلیف انجام ندادن خیرش برای او یا خروج از ارزشه. خدا بندگانی رو که دوست داره میگه مندازیم تو اطلاعات ببین در این اطلاعات چه کار میکنه فخده بشه بیاد بالاتر بالاتر اومد یه چیز بهتر بش بدیم. چیز بهتر دادیم امتحانش رو سختتر میکنیم. امتحان سخت کردیم به درجه بالاتر میبریم. وجود مقددفعه زینب و و کبرال سلام الله ها وقتی تو مجلسه. یزید وارد شده ببینید در بین شش هزارششد و شست آیه انگشت میگذاره روی این آیه برای چی این آیه رو ميکونه آیه چیه ولا يحسبن الذین كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین برای اینها خود این باعث گرفتاری بیشتر میشه عذاب خارکننده براشون بیشتر حاصل بشه حالا در این زمینه آیات زیاده من انشالله در ادامه بحث عرض میکنم گاهی خداوند بندگانی را که میخواهد به مکرمت برسان امکانات بهشون میده ببینه از امکاناتی که بهشون داده شدی چجوری امتحان میدن گاهی میگیره ببین ازشون گرفتن چگونه امتحان پس میدم حالا این پله های مختلف امتحان که صبر لازم دارد اجازه بدید یک روایت رو امشب از مولا امیرالمومنین علیه السلام همون باب صبر اصول کافی جلد دوم باب صبر صفحه نود حدیث 11 براتون بخونم انا انا اسبغ اسبغ ابن نباته از یاران ارزنده امیرالمؤمنین شخصیت بزرگیش او نقل میکنه قال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه امیرالمؤمنین فرمودن از صبر و صبران صبر دو دیشب گفتم از صبر و ثلاثه منافات با هم نداره از دید مختلفه دیشب گفتم از صبر و سلاسه پیغمبر فرموده بود آیا پیغمبر با امیرالمؤمنین نعوذ بالله با هم مخالفت دارن نه ببینید دیده ها یه وقت داریم از این دید تقسیم بندی میکنیم مثلا میگیم انسونه ها دو قسمن آقایون خانوما از دید جنسیت تقسیم کردیم یه وقت میگیم انسونه ها سه دستن کافر مؤمن منافق شما گفتید دوتا از اون دید گفتم از صبر و ثلاثه از اون دیدی که دیشب بحث کردیم دیگه فرصت نیست توضیح بدم خواستید باز ارز میکنم حالا دیدی که امشب داره برای ما توضیح میده الصبر صبران صبر دوتوس صبر ان دل مصیبه حسن و سبران سبر اند حسنون جمیل و احسن من ذلک الصبر اند ما حرم الله عز و جل علیک به خود عبد الله قسم عقیدمه به شهدای کربلا سوگند عقیدمه اگه تو این دهه محرم شیعه ای عبد الله دل سوخته های امام حسین همین حدیث تنهایی از همه یه که زدیم و جاهای دیگه رفتید و مجالس و مطالعه کردید و اشریختید و توسل داشتید و انشاءالله مشمول انایات این خانواده شده اید اگر همین یه دونه را ما سوژه قرار بدیم برای تا محرم سال بعدمون چا امیدوارم به حقیقت عبا عبدالله محرم سال بعد را خدا برگذاری مجالس عبی عبدالله را در حضور امام اص بعد از ظهور اون حضرت شو به همه ما انایت به فرماید همین درس اگر ما بگیریم با همه مقدمات یه میگه عرب چی میگه صبر چیه اینو برای زندگیمون سر لوحه قرار بدیم تا محرم آینده ببینید مشکلات حل میشه برای شخصیمون فردیمون چیه از صبر و صبران صبر و نندل اینجا داره از دید صبر نسبت به مشکلات یه وقت صبر نسبت به آسایشه تا پول میدی ان الانسان لیتقا ان راهو ثقنا بعضی از اون طریقه تا یه کمی دستش باز میشه شندرغاز پول گرش میاد یه مقامی بش میدن یه میزی بش میدن یه موقع ها چه می آقا چی شد یه امتحانش با این دارایی شروع شد نتونست از این, اون را... از این رو به اون رو شد نه اینجا حضرت این بره قضیه رو میگه بعضیا به عکسش حالا تا قضاش روبرا بود گفت قشنگ وقتی چلو کباب باحالو خورده بعدش میگه الهی لکل هم یه روز گرسنه نون پنیر میخوره خدایا شکرت الحمدلله چلو فرق کرد چرا فرق کرد اگه صبوری همون شکری که در نون خشک این به پروردگار میگه باید در اون چلو کباب هم که میخوری همون صبر و شکر رو بگی اگر در چلو کباب اون شکری که گفتی پسندم اون چرا جانان فسنده این مقام مکرمت یک انسانه که باید بیاد بالا حالا مشکلات و صبر در کاستی ها را حضرت داره توضیح میده یه کاستی ها مسائبه صبرونه در مصیبت خب این روشنه حسنون جمید خیلی خوبه خیلی زیبا همیرون مؤمنین میگه زیبا همیرون مصیبت به شما میرسه انقدر بيتاوی نکنید قوی باشید بیشتید ثابت قدم باشید خودتون رو نبازید اما دقت بفرمایید و احسن و من منزالک از این صبر احسن نیکوتر بهتر زیباتر بالاتر دیگه نقل به معنا میکنم باشنگتر از صبر عندما حرم الله عز وجل علیه اون جایی که چیزی را که خدا به تو حرام کرده صبر کنی این یاد داشته باشید از ابی عبد در ایام شهادت ابی عبدالله در جایی که خدا بر شما حرام کرده آمد که زبان غیبت رو بگی دلم لک زده به قول اون بنده خدا میگو کمی غیبت کنیم دل آرام بگیره خدا میگه به ذکر الله تا زمان نالگلو، او میگه قیبض کنم دلم آ. با قرآن فقط خیلی فرق نمیکنه 18 درجه. او میگه علاوه به ذکر الله، تا زمان نالگلو، میگه قیبض کنم. فلانی رو بکوبم، پشت چینی کنم. آها، اقدام تشفی خاطر پیدا کنم. حرام هست یا نیست؟ اگه حرامه، صبر در اینجا چیه؟ خدا این نفس سرکش بیچاره کنندم. داره میگه بگو، اما تو گفتی نیست. صبر. اون را خدا بر شما صبر کرده الان مدتی دنبال بودم با زدوبنده های گوناگون فلان کار اقتصادی پرچرب لغمه چرب جالب رو برای خودم ببلم به لحظه رسید که دارن لغمه گیرم میاد یه دفعه متوجه میشم مقدمات شرام بود حق دیگری رو ضایع کردم زد و هایی کردم رشوه دادم تا این کار گیرم اومده خدایا تو نمیپسندی من جلوش با... نه نیستم. ا ای تو این همه مقدمات قرض کردی. بله. ولی بله به جای این صبر چقدر زیباست این حرام نمیخوام. نگاه به یه نامحرم داره میفته. نفس میگه نگاه کن. خدا چی میگه؟ پیغمبر چی میگه؟ امام زمان چی میگه؟ میگه نه، صبر کن. صبر چی؟ از این پله شروع کن. منی که تو این پله می لغزم. که اونم پیش من از یه طرف دست تو میگوسم که صادقانه میگی ممنون ولی از طرف دیگه دارم تو که من نمیبرم میدونی کلی دارم میگم که دیگرانم این به زنگاه ها رو اساس بشم راحت داره میگه آقا جون میدونم وقتی این نگاه به نامحرم میندازم دلم کم کم میره دل که رفت میرم به سمت گناه اینو میفهمم اما حالا چیکار بکنم خوب دقت بکنید چیکار بکنم میگم عزیزم این مقدار دستت درد نکنه که میای میگه چیکار بکنم ولی قبول داری که نگاه میکنی حرامه قبول داری یا نداری خب حرامه بیا تمرین کن تمرین شما به رفیق پیش استاد ورزشت آقا بنده میخواهم وزنه بردار بشم رکورد جهانی رو من بشکنم یه نگاهی به قیافتی میکنه میگه میتونی الحمدلله سالمی سرحالی سنتم هنوز سن خیلی بالا نرفته دیر نشده میتونی خب چکار کنم هر روز باید این تمرینو بکنی این تمرین آقا میخوای یه وزنه بلند کنی که از دیگران قویتر باشی تو تغذیه تاثیر میذاره یا نه باید اینا رو بخوری اینا رو نخوری اینجوری باید تمرین کنی این کارا رو یه وزنه میخوای بلند کنی اینقدر تمرین میکنی میخوای عبد خدا بشی تمرین نمیخواد عبد خدا میخوای بشی تمرین نمیخواد تمرینش چیه به فرموده امام امیرالمؤمنین علیه السلام صبر از و احسن و منزالک، الصبر اندما حرم الله عز وجل جل علیه، اون جایی که خدا حرام کرده یکی یکی اول حالا راهاشو رو اجمالا نمعرض کنم یک فکر کن حرام است خدا نمیخواد نمیارزه چند روزه زندگی ما امام حسین داریم ما فردای قیامت داریم ما در فردا میخوام برم تو حرم امام رضا با چه روی امام رضا رو نگاه کنم فردا میخوام مکه برم با چه روی لبیک اینا رو هی تو ذهنت بیار شما کی هر رو قبول داری دو آخ پاشم همین الان که این وسوسه بس ها داره تو دلم گل میکنه بدوام برم فلان مجلس امام حسین یه گوشه بشینم این آقای مجلس امام حسین این مجلس امام حسین این ای مجلس, ای مجلس امام حسین به خود امام حسین نمیدونم چی بگم نمیدونم ولی انقدر میفهمم چی میخواهید بگیرید از مجالس امام حسین کائنات رو خدا از توفیل مجلس امام حسین به کسی بده تعجب نکنید طبقا استدلاله و نجیناه و من معهو به رحمت من نارحمتی که در اثر صبره صبر حسینم که معلومه چگونه چگون کی دشمنان ما بیدارن، بخان این مجالس از منو شما بگیرن. ما مفتخر می کنیم. آقا شما میگید این مجالس قدیمی، ما قدیمی، ما مرتجه، ما روزه می خونیم، ما سینه میزنیم، ما تو سرمون میزنیم، ما سیاه میپوشیم. اینا رو زنده نگه می داریم. به کوری چشم دشمنان مکتب امام حسین که خیال کنن با این حرفا بچشيعها رو میتونن از این ها کنار برن بچه سه ساله دیشب اینجا، پارسال اینجا با یه تریبون دیدم اونقدر گریه قش کرد عشق امام حسینو شما میخواید من این روزا مادرایی میشنسم شیر بچه هاشون رو کم کردن که بچه هاشون گریه کنن بگن به یاد علی از باشی. من این روزا خانوادههایی رو میشناسم که غذای گرم نمیخورن ما این ایام افرادی رو میشناسیم. آقا اینا رو دشمن فهمیده چون امام حسین با دل خار داره دشمنم مردمی که دلشون زنده است نمیتونن استثمارشون کنند میخوان دل بمیره تا استثمار کنند میخوای به این درجه برسي کار کنی آه صبر صبر صبر صبر صبر ولی این سبر را از کجا شروع کن برادرم از ارتکاب به گناه شروع کن چا میای میله به گناه پیدا کنی؟ یک تو ذهن تلقین کن یک کاغذ بنویش هی نگاه کن من نه الان گفتار درمانی رشته است روش بحث میکنم تو دانش من نباید این کار رو بکنم من دو بود برو تو مجلس امام حسین اگه مجلس برپا نیست، یه نوار امام حسینو رو یه کمی گریه کن حسین جان تو همه تو برای خدا دادی من نگاه به نامحرم و ترک کردن برای خدا نداشته باشم وقت من روم میشه بگم حسین این حسین اگه اینجوری با حسین اتبایت پیدا کنم و این جوون پاک نمیشه تو این کمرینه برای هر یک از این گرایش های باطلی که به نام حرامه تمرین کن تصمیم بگیر تلقین کن برو سراغ دوستان خوب برو مطالعه کن هی جلوشو بگیر بگیر بگیر تا آرام آرام این قلبه لذا هر سال بعد از آشورا بعد از بسی یک بعد از ایام فاطمیه بعد از دهه ماه سفر چه تعداد ما از جوانا داریم میان یا میبیشن یا میگن میگن به خدا ما دیگه تصمیم گرفتیم برگردیم چیکار کنیم که جبران کنیم اینا رو دشمن میخواد از ما بگیره امشب اجازه بدید کافی باشه و مقدم چینی کنم بریم برای ایام ایام ازاداریست ایام ای عرض عدب ها رو هم قدر بدانید و بگیرید و انشالله بعد از باز سرایی سرائی غفاری غرفاری ما تا ساعت تحویل اینجا دو حدیث کساب و توسل و دعای تحویل و باز عرض ادب به ساعت امام حسین داریم که امیدوارم چو امیدوارم خدا به برکت ابی عبدالله امسال این مملکت و همه شیعیان و مسلمین عالم را که از ابتدای این سال شمسی و سال قمری که معمولا با یاد حسین و مجالس حسین دارن آغاز میکنن مشمول عنایات خاصه امام اص علیه السلام قرار بگیرن ان شاء الله پس اصبروا صبران صبر عند المصیبه حسن جمیل و احسن و منزالک از سبرون اند ما حرم الله عز وجل لعلك و ذکر و ذکران ذکر الله عز وجل اند المصیبه یاد خدا افتادنم دو تاست یکی در مصیبته تا گرفتاری برای پیش میاد خدا رو یاد کن یاد خدا بیفت ای یاد خدا بودنها باعث نشی که آرامش بیدا کنی و افضل و منزالک ذکر الله عندما حرم علیک فیکون حاجزا دالاتر از این افضل از این ذکر این یاداوری اون یاداوریست اونجایی که خدا به شما حرام کرده یک کار رو تا به اون کار میرسی بیاد خدا بیفتی بگی خدا اینو نمیخواد این با همون صبر کنار هم قرار میگیره پس تمرین برای رسیدن به اون مقامات باید از مراحل پایینتر شروع کنیم ولی امتحان ها سر میشه صبوری امتحان بالاتر رو میذارن نبودی شما امتحان راهنمایی رو دادی توان داری امتحان دبیرستان بدی میارند، توان داری کنکور دادی قبول شدی بیا دانشگاه امتحان بالاتر میدن تو هر مرحله رد شدی وارد امتحان بالاتر نمیکنن میگه اونجا میمونی تا این امتحان رو موفق بشی بعد بیای بالاتر در سیر الاله البلا للولا همینه شما رو تو اطلاعات قرار میدن ببینن چقدر قدرت ایستادگی داری شمایی ای که در مقابل یک کشش جنسی نمیتونی واسی میخوای تو اطلاعاتی قرار بگیری که به اون تعالی مکرمت انسانی نائل بشی شمایی که یه رشوه نمیذارده بر هوای نفس غلبه کنی شمایی که شهرت و اسم و نام و مقام و منیت و جناح و حزب و دار و دستب و گروه باعث میشه حق رو زیر پا بگذاری صبر و تحملش نداری بگی حقیقت برای من از همه این حزبازی آبالاتره است شما میخواید در امتحانات الهی به درجات بالاتر برسید نه اون عالیترین درجه عالیترین درجه اونه به جایی برسید جز خدا هیچی برات مطرح نباشه برای این باید مثل اصحاب کربلا هی امتحان بدید حالا امتحانی که در کربلا بود از همه حادتر برای خود امام حسین علیه سلام همه این سحنه ها رو دیده دیده دیده دیده تا اسر شورا حالا نوبت خود آقا شده میخواد بره میدان اومد در خیام که با زن و بچه خداحفظی کنه بره میدون حالا اینا صحنه ها رو در نظر بیارید یه وقت زینب سلام الله علیه ها یک نقل قنداغه شش ماهر رو آورد حسین جان این بچه دارد جون میده از عطش کلمه ای رو که در مقاتل داره که امام حسین علیه السلام به زبان راندن که بعضی این رو قویتر از اون نقل دیگر میدونن وارد تحقیق تاریخیش نمیتونم بشم. بحث تلزیه که شنیدید بارها دیگه این ایامشه باید گفت ماهی رو از آب بگیرید اون مراحل اول که از آب جدا شده اگه خودشو میندازه بالا میندازه پایی اینو عرب تلزی نمیگه و در این حالت ماهی رو برگردونید توی آب زنده میمونه یه مقداری که زمان بگذره فاصله با آب زیاد بشه توان ماهی کمتر میشه از این پهلو برمیگرده به این پهلو از این برمیگرده به این پهلو. این هم عرب تلزی نمیگه بازم ماهی رو برگردونید تو آب امکان زنده بودنش هست اما وقتی که دیگه رمغش تمام شد دیگه اون نزدیکی های دادن ماهی فقط دهنشو رو میکنه میبنده یعنی دیگه بدنش هم حرکت نمیکنه در این حالت ماهی رو برگردونید تو آب بازم میمیره عرب این حالت ماهی رو در اثر اتش میگه تلزی اینو داشته باشید یک دو کرامت و مکرامت و کریم بودن یه ویژگی ارزنده بگه اطحاب عبی عبدالله دارن به این مقام میرسن خود امام حسین کرامتش چیه؟ او وقت یه مردی که کریم باشه به اندازه‌ای که کریمه بخشنده هست مکرامت داره حالا این یه پدر معمولی باشه مادر بیاد جلو پدر معمولی بگیره بگه بچم تبش رسیده به چل درجه بیتابی میکنه میگه بچه رو بده من الان برم در منگاه. بره درمونگاه بچه تورا تموم کنه این میخواد برگرد خونه چه حالی داره من الان به مادرش چی بگم الان اگه خواهر کوچولوش بده بیاد جلو داداشم بردی درمونگاه چی شد بهتر شدی یا نه جانم به فدایت حسین جان ای مظلوم عالم وجود ای صبور عالم هستی ای پر تعمل عرش و فرش در جانه هستی امام حسین اومد ای گنداغه شش و زینب کبرا سلامالله علیه ها آوردن یه بار تو گفتم تو این دهه الانم میگم امشب بچسرید خیلی بزرگان وقتی میموندن متوصل به حضرت علی اصخر علیه سلام میشدن میگفتن همه اصحاب کربلا ارزندن مظلومن ولی یک مظلومیتی علی اصخر داره بقیه ندارن یه ویژگی این سرباز شش داره که بقیه ندارن هر سروازی اقل یه تیری در دفاع خودش راها کرد هر سروازی یه شمشیر در دفاع خودش درد این سرواز دستش هم تو اون داغه بس نست آخر با یه همچه سروازی با یک همچه مظلومی در عالم در افتادن حالا آوردن به وی لحوی عبدالله دادن حسین جان این بچه داره میمیره حبی عبدالله بچه رو دستش به مردم نشون داد در تاریخ پیام باقی بمانه مردم نمیبینید این بچه داره تلزی میکنه یعنی آبم بدید میمیره آبم ندید نمیمیره بز... چون میدونه که اینا آب نمیدن آبم بدن که این بچه میمیره میخواد در تاریخ بمانه که من با کیا مواجه بودم و چی رو صبر کردم فرمود اگه خیال میکنید من این بچه رو بهانه کردم که برا خودم آب بگیرم. یه این بچه رو از من بگیرید ببرید سیرابش کنید برگردونی هر کنار عمر سعد اصداده بود به عمر سعد گفت پدر نشانه بگیرم یا پسر رو گردن در اثر بیتابی رو بند نمیشد سر رو گردن سر علی اصخر طبق نقل تاریخ شل شده بود افتاده بود سفیدی زیر گلوی علی اصخر تو بغل پدر پیدا بود چون این سر در اثر بیتابی و تشنگی شل شده و افتاده زیر گلو هم هوام گرم بوده لباس معمولی مختصر سفیدی زیر گلو پیدا بود میگن عمر صد به عرمله گل سفیدی گلوی از نمیبینی میبینی تیر رو رها کرد امام حسین بچه تو بغلش داره عرف میزنه بچه ای که تلزی میکنه رمغ حرکت نداره یه وقت دید بچه شروع کرد دست پا زدن تیر گلوی علی اصخر از این گوش تا این گوش رو درید آقا دست بر بیر گلوی علی اسخر، کف دست آقا پر خونش خونو به طرف آسمون پاشون امام باغر نقل میکنن تو واقعی کربلا پنج ساله بودن امام باغر امام باغر نقل میکنن میگن به خدا سوگن قطری از اون خون به زمین بر نگشت. خدا خریدار اون خونه ما حسین بچه تو بغلش چه کار کنه مادر تو خیمه منتظره خواهر و عمه تو خیمه منتظره یه وقت اینا دیدن عبی عبدالله برگشت ولی تو خیمه نمیاد راش رو کش کرد رفت پشت خ... بانو که خنجر یه قبر کوچولو توی ماسه های پشت خیمه حف کرد خاصی بچه کوچولو رو تو غور بذاره این صدای ناله جانسوزی میاد رباب مادرشی میگه حسین جان بگذار یک بار دیگه این رباب از اون همسرای وفادار و متدینه ایش که به ابی عبدالله خدمت آگرده شام یازدهم که آب آزاد شد یه مختصر آبی آوردن به زحمتی خواستن حضرت زینب این زن و بچه رو سیراب کنه آب نمیخوردن زحمت میکشید زینب آب بنوشن اینا رو آرام کرد بعد از همه یوم سعنا یه وقتی با پشت خیمه از زینال زینب دوی چلون رو آرام باش من بچه رو تازه خواه بوندم گفه بیجونه آب خوردن شیر به پستانم آمنم